Bismillahir هدرك لم تانس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خدلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستنطر بسم الله الرحمن الرحيم السلام و درود و سلام فراوان به پیشگاهی آخرین گوهری تابناک نبوت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شنوندگان عزیز به برنامه هفتواری از جمعه تا جمعه خوش آمدید خدا کند که صحت و سلامت بوده همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشید و همه عبادات شما در نزد الله تعالی قابل قبول بوده باشد تشکری می کنم از همکاران ما در بخش اوزبیکی برنامه از جمه تا جمع که زحمات زیادی را متقبل شدند از خداوند متعال در بدل این زحماتشان عجر بزرگی را خواهانم برنامه امروزی خود را با یک پارچه شعری که در مجاهد گفته شده است آغاز می نماییم شعر است جامعی سرخ ویسال گرنه او در گوشه ای سنگر خدا را دیده بود گرنه او در گوشه ای سنگر خدا را دیده بود پس چرا در گودی داغش آنچنان دیده بود با خلالی دودی باروت شعله ها و گرد و غاز با خلالی دودی باروت شعله ها و گرد و غاز شمع دلکش زیروزاتی جنان بوییده بود موجی تندی شوق در بحر دلش پرشور بود بر سر و رویش بسی باران لطف باریده بود از صدای رعشداری بم سفیری توپ و تانک شرک می پنداشت اگر از مرک دمی ترسیده بود از گزاری معرکه سوی ویسالی یار رفت از گذاری معرکه سوی وصال یار رفت، جامعی گلگون بخون، بهره حضور پوشیده بود. جامعی گلگون بخون، بهره حضور پوشیده بود. گرن او درگو شیسن گر ناأدرجو شی سگر خدا رادی دبود گر ناأدرجو شی سگر خدا رادی دبود پس چرا درگودی داغش آنچونن چلسپی دبود با ما یانی چک چکشم شیرها سر نی زها هش هش پیراهنی حوری بهشت بی بیش نی دبود هش هش پیراهنی حوری بهشت بیش نی دبود با خیالی دودی بر شعله‌ها و گردگاشم ای دل کش روزاتی جنان بی دبود شم ای دل کش روزاتی جنان بی دبود گر نهود درگوشی سعیر خدا را دی دبود پس چرا درگودی داغش آنچونش سپی دبود گر نهود درگوشی سعیر خدا را دی دبود پس چرا در غودی داغش آن چنان چسپی ده بود ماج تند شوق در بحر دلش پر بود بر سر و رویش بسی باران لدف برید بود بر سر و رویش بسی باران لدف برید بود بیمه بک از زاهری آراسته دشمن نداشت معنی الله اکبر رم فهمید بود معنی الله اکبر رم سیدن فهمید بود گرنه درگو شای سنگار خود را دیده پس چرا درگو دیغاش اون چنان چسبیده بود گرنه درگو شای سنگار خود را پس چرا درگو <متصفيق> باز هم خوش آمدید اکنون نوبت به سلسله مصاحبه ها رسید در این افته رادوی صدای الله مصاحبه را انجام داده با استاد محترم مولای سایب مسلم که اینک به خدمت شما تقدیم میگردد استاد محترم به برنامه ما خوش آمدید الحمدلله رب العالمین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 میشه به اولین سوال از شما بپرسیم که اوزای سیاسی افغانستان را چگونه بررسی می نمایید؟ الحمدلله اوزای سیاسی افغانستان روبه بهبودی روان است و همه در نقاط مختلفان در اثر عملیات کمین یا حجومی مجاهدین قهرمان و سربکت اسلام و در اثر عملیات فیدایی و در اثر انفجار ماین جاسازی شده از طرف مجاهدین صدها افواج خارجی و داخلی به جهنم ساده شده و دها ها وسایت نقلیشان تخریب میگردد لذا هر روز مرال مجاهدین قویتر شده روان است در بسیار مناطق افغانستان که در سالهای پیش مجاهد نبودن مجاهدین در اونجا وجود نداشتن الان الحمدلله از آن مناطق مجاهدین از احالی آن مناطق ظهور نموده کفار و مرتدین داخلی را در تحت روب و حراس خود قرار دادند. کفار در این وقت در تزلزل قرار گرفته برای خروج خود از افغانستان در پی سازش می باشند در نتیجه بسیار غربی های افغانی اصل که بعد سقوط امارات اسلامی عظیم افغانستان شده بودند از امریکا و اروپا منایت فکر می کردند که امارات ختم شد دوم بار قائم نمیشا دیموکراسی حاکم شد ما با میل و خود چنانچه در غرب ما زندگی میکردیم به عیش و دنیا به پورا کردن نفس مشغول بودیم همچنان در افغانستان قدرت را به دست گرفته با میل و خود بالازات نفسانی مشغول میماشیم اما فعلا در گروز از افغانستان به سوی امریکا با می و اروپا باشند و تعلیل میکنند که بعد از خروج نیروهای خارجی حکومات کرزه سقوط نموده، امارات اسلامی دوباره در افغانستان حاکم خواهد شد. بلاخره به قصد امریکا و اروپا افغانستان را ترک گفته تا طرف رفت رایی است. این یک کلان بهبودی در اوزای سیاسی افغانستان است. مورال کفار خیلی ضعیف شده گی کفار به شکست خود امروز اعتراف اقرار می نماید و... خراونای بزرگ حکومت کرزای که در خارج جاها برای خود ساختگی است و گریز خود را برابر کرده ماندگی است. اما کسانی که در زیر دستان اونها قرار دارند اونا به هیچ طرف گریخته نمی توانند اونا در در دربیم قرار گرفته که چه قسم با همرای مجایدین ما رابطه کنیم. اکنون شما که در صفوف حرکت اسلامی ازبکستان قرار دارید نظریات شما در مورد این حرکت چگونه است؟ بعد از اینکه در صفوف حرکت اسلامی اوزبکستان پیوستم مدت دو سال می شود که از هر لحاظ مشاهده نمودم بعدا در یقین آمد که این حرکت یک حرکت کاملا اسلامی و قرآنی است و لشکر این حرکت را هر حر کدامشان را اسلام زنده و مجسم فکر نمودم و حیات کل افراد حرکت را به حیات مدنی صحابه کرام رضوان الله تعالی علی مجمعین و مسلمانان صدر اسلام مقایسه می کنم و یقین نمودم که این حرکت یک حرکت اسلامی و عالمی است زیرا در بین لشکر این حرکت از ممالک مختلف جهان و از نژاد و السینه متنوع عالم مسلمانان بچشم می خورد و بعد از مشاهده افراد و لشکر این محمد رسول الله صلی الله عليه و وسلم به یادم می آید که سلمان از فارس صہیب از روم بلال از اصحاباج و باقی از جزیره العرب با یک هدف تحت پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله قرار گرفته بودند اکنون شما که در دیار هجرت به سر میبرید حیات فعلی خود را با حیات قبل از هجرت چگونه بررسی میکنید حیات فعلی بنده که در دیار جهات و هجرت قرار دارند بالای حیات قبلی که در یک محاوله پر از فتنه و فساد کفر قرار داشتند با درجه ها عالی است زیرا بنده در حیات قبلی در اثر خرابی های ماحول از فخشا و معاسی بسیار بتنگ بدن همواره از نهاز حرکت ایمان میکوشیدن که در برابر فسادهای های مبارزه صورت گیرد برای خود هیچ همکار و هم نظر پیدا نمی گردن. بعضی وقت لسانن مبارزه میکردند در برابر باطل از طرف حکومت کفری در تحت فشار قرار می گرفتم. اما ورودی ملامتی دوستان و اقارب نیز قرار می گرفتند اقارب و دوستان برای من میگفتند که بیوکا پا عواقب خطرناک متوجه میشوی، شوی را برای خود دشمن میسازی اما بعد از اینکه به فضل الله جل جلاله به نعمت هجرت و جهات نائل آمدم الحمدلله الان خود را در یک ماحول کاملا اسلامی می بینم و رفقه و همسنگران خود را برای خود همکار و هم نظر می روهم تر و تازه می شود و چیزی که از علم شریعت می که الله تعالی فهم علم شریعت چیزی که به قدر توان من است برای من عطا نبوده است. و فهم و علم شریعت را آزادانا بدون کدام احساس خطر برای برادران مهاجر و مجاهد بیان می کنم الحمدرالله هموارم مودود ستایش ایشان قرار می و از الله جل جلالهو مسئلت دارم که در این راه مقدس مایان را ثابت خدم نماید و در این راه خیلها ها میباشند. می باشن. به با اخیرین سوال به اموم مجاهدین چی پیغام و چی ها دارید؟ توصیه من به مجاهدین رای حق این است که مجاهدین باید های خش را خالص برای الله جل جلالهو نمایند و از الله جل جلاله در امور جهات تقوان ماین و با تمام اصول و شرایط جهات پابند باشند و در جهات خیانت نکنند زیرا جهات یک رای مقدس است کسی که در جهات خیانت میکند الله تعالی او را از صف, از صف مجاهدین دور میکند و در جهات ثابت قدم باشند در ما بین همسنگران خود و و مهربانی را برقرار نبوده در برابر باطل اشده و سخت باشند در این رای مقدس عظم خود را قاطع و راسق نماین در نتیجه ملامتی ملامت کنندگان سست و غمگین نشون انشالله نصرت و فتح از طرف الله تعالی نزدیک است الله تعالی میفرماید نصر من الله و فتحون قریب جهان سپاس از شما که با اشتراک خود برنامه ما را رونق بخشیدید من هم از تمام خادمین رادیوی صدای جندولا تشکره میکنند که به من فرصت داد تا از طریق اموال شما به خدمت دوستان قرار گردند. در اخیر از خداوند منان خواهنم که به همه ما و شما توفیق این فرموده و تا آخرین دم حیات در این راه ثابت قدم بگرداند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنقل النوبات فرحانا استمسع رحب بك تاتينا ذوري وتزبد اعصادا بخش طبق معمول، گزارشات داغ هفته به خدمت شما تقدیم می گردد. افغانستان، 26 سفر مطابق 19 جنواری، در خبرنامه امارات اسلامی آمده است، که در ولایت هلمند یک برادر استشهادی به نام حمید الله با واسکت فدایی مخفیانه داخل نیروهای ناتو گردیده عملیت استشهادی را انجام داد که در نتیجه 17 تن از askeronate کشته و بیشتری ایشان جراحت برداشتند البته گفته می شود که این عملیات با خاطر قصاص 4 نفر از افراد ملکی بود که چند روز قبل از سوی نیروهای ناتو به قتل رسانده شده بودند با تاریخ مذکور در ولایت قندهار یک برادر استشهادی به نام احمد با موتر ممنوع از مواد منفجره در نزدیکی کاروان نیروهای ناتو عملیات استشهادی کرد که در نتیجه دوازه آنان به قتل رسیده ره سفار جهنم گردیدن. وبعد از عملیات، اسوارکی که در این عملیات زنده مانند بودند، از خاورو غزبی خود بالای افرادی ملکی گلوله نمودند. سه آنان را بکطلا دست البته این گزارش در اینترنتی است. 27 مطابق 20 در امارات اسلامی Vos hamba torri kimaskur. Darvila jatkoi pisaa, jakaskari urdui millä, bolloi asokirifaronsavi gurulaborinamut. Gidarnat ja jain in shashta ni on و 16 تن دیگری چون جراحت برداشتند بعد از این حادثه رئیس جمهور فرانسه به قر گفت که ما دیگر نمی‌توانیم از این بیشتر در افغانستان باقی بمانیم در هفته گذشته در مرکز در میدان یک جاده مجاهد انفجار دادند که در نتیجه روز 27 سفر مطابق 20 جنوری در شهر و که نام خون در مقابل خون است انتقام اطفال و زنانی که در خیبر ایجنسی اسوی فوج مرتد به شهاده رسانده شده بودند به نمایش گذاشته شده است این ویدیو از طریق سایت اینترنتی عمر به تمام جهان منتشر گردیده است لیبیا، بسته اشتی سفر مطابق بستیک جنوری بعد از سقوط حکومت قذاکی و تحولات دیگر، ملت مسلمان آن کشور درک نمودند کی رای حل همه مشکلات شریعت اسلامی است. به همین علت در ترابلیز جمع گردیده خواهان شریعت اسلامی از حکومت شدند. یکم ربیع الاول مطابق بستشار جنوری. اولین بار یک ویدیوی جهادی از طریق استودیوی جدید بنامه جبهت النسره برآمد. این ویدیو هبدا دقیقه بوده موضوعات آن از این قرار است. یکی از قماندنان مجاهدین بنامی فاتح ابو محمد الجولانی با بیانیه خود ملت سوریه را بزد حکومت تشویق میکند و همچنان در این ویدیو تعليمات نظامی از اماکین مختلف درج گردیده است دو ی ربیع الاول مطابق 25 Dutana's دو تن از برادران مجاهد کی در وزیرستان تحت گروه القائده بود به دست حکومت آلمان اسیر گردید علت دستگیری این است که ایشان به گروه القائده کمک مالی نموده و جوانان را صف جهاد مصر نظر Bari حکومت مصر از داخل یک Batoireksi maskoor yksi märdi draivar, ki majnoungardi da boot, yksi es muterhai basi hokumatra girfta, dar daahili shar harakat draaward, ki dar natijei tasadomii basi maskoor, nunu farkushta, Wabist biist Tahrib digar بها من الله هيا بنا جريحا قد يهود عزیز این بود داشتههایی برنامه امروزی ما که به خدمت شما تقدیم کردی تا جمعه دیگر خداوندی منان یار و یاورتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي زمجد ابي ابي ابي ابي زمجد الله